داستان درخت گردوی سالارآباد روز روزگاری پادشاهی بود که نه به شکار میرفت و نه سربازانش رو به جنگ با کشورهای همسایه میفرستاد و هر نوع اختلافی رو با گفتگو حل میکرد و نمیزاشت کار به دشمنی و خونریزی بکشه. هرگز در این فکر نبود که لشگر کشی و کشور کنه و خزانه رو از زر و سیم لبریز کرده بود بلکه شب و روز در فکر آسایش مردم بود و به دوزدان و نابکاران در هر مقام و موقعیتی که بودن امان نمیداد. و برای اینکه بفهمه مردم چه میگن و چه میکنن گاهی لباس پاره میپوشید و ناشناس به خیابان خیابانها سر میزد و از این راه در جریان تمام حوادث بود و درباریان نمیتونستن حقایق رو ازش پنهان کنن و از همه بالاتر این پادشاه دانا و سرطلب سعی میکرد دادستان باشه و حق رو به حقدار برسونه به همین علت هر کس حقش زایی می به قصرش می رفت و داستانش رو برای اون بازگو می کرد راویان داستان می گن که در کشور همچون پادشاهی مردی بود عالم و فازل که می خواست به سفر دوردستی بره این مرد بعد از عمری قناعت و صرف جوی هزار سکه نقره پس انداز کرده بود به این امید که در دوران پیری محتاج نباشه و در این سفر نمیتونست اندوختهش رو به همراه ببره و نه مسلحت میدید که سکه ها رو زیر خاک پنهان کنه بناچار نسل بازرگان بسیار ثروتمندی رفت که در شهر به امانت و صداقت مشهور بود و هزار سکه نقره خودش رو به اون سپرد بازرگان سکا رو ازش گرفت و گفت تو از بزرگان شهر ما هستی دانشمندی چون تو در بین ما کمه خوشحالم که این خدمت ناچیز رو به عهده من گذاشتی به سلامت و با خیال راحت به سفر برو وقتی او برگشتی هزار سکه نقره رو بیکم و کاست به تو برمیگردونم و اون مرد عالم و فاضل با خاطری آسوده به سفر رفت و یک سال بعد برگشت و نزد بازرگان رفت تا سپردش رو پس بگیره اما اون بازرگان انکار کرد و گفت شاید رو به بازرگان دیگی سپردی و به اشتباه سراغ من اومدی مرد دانشمند به خش اومد و فریاد کشید که ای آدم حق باز. من استاد حساب و ریاضیاتم سختترین معادلات رو به آسونی حل میکنم و به ذهنم میسپارم میتونم چند عدد ده رقمی رو در ذهن خودم جمع تفریخ کنم و نتیجه رو بدون اشتباه بگم دوستانم از قدرت حافظه من تجرب میکنند. مگه میشه که با این حافظه قوی اشتباه کنم تو رو و به بازرگان دیگه سپردم رو سپرده باشم و بعد از اون سفر یک ساله قیافه آدم متقلب مثل تو رو فراموش کنم اما هرچه کرد و هرچه چه گفت بیفایده بود ناچار نزد پادشاه رفت و ماجرا رو باز گفت. پادشاه که اون رو خوب میشناخت و میدونست که دروغ نمیگه بهش گفت آروم باش. و و چرا همان کاری رو که من بهت میگم انجام بده. تا اینجا که میدونم تجارتخانه این مرد در کنار یک چهرا بزرگه و اون معمولا در جایی میشینه. که بتونه از دریچه تمام حوادث و رفت آمدهای بیرون رو ببینه. فردا نزدیکای ظهر برو تجارت خونه در جایی واسه که بتونه از دریچه تو رو خوب ببینه و سعی کن که فاصلت رو با اون دریچه زیاد نکنی و در اونجا منتظر باشو از جا تکون نخور و بقیه کارا رو دیگه به من بسپر. مرد عالم که به دانایی و تدبیر پادشاه اعتقاد داشت ظهر روز بعد در چند قدمی تجارتخانه اون بازرگان ایستاد وزیر چشم میدید که بازرگان به کار خودش مشغول و دوزانه اون رو نگاه می کنه چند دقیقه نگذشته بود که کارسکی پادشاه از دور پیدا شد سواران سبزپوش در دو طرف اون اسب میتاختن وقتی کالسکه به چهار را رسید توقف کرد سرکرده سواران از اسب پایین اومدن و رفتن و در کالسکه را باز کردن پادشاه پایین اومد و مرد دانشمند رو که منتظر و متحیر ایستاده بود در آغوش گرفت و با صدای بلند گفت برادر عزیزم کی برگشتی چرا سراغ من نیومدی برادر امروز اس منتظر تو هستم و قبل از اینکه مرد فاضل حرفی بزنه صورتش و بوسید و سوار کالسکه شد و پادشاه به حرکت درومد و از اون محدود دور شد هنوز چند لحظه نقزشته بود که اون بازرگان که همه چیز رو دیده و شنیده بود بیرون اومد و دست اون مرد دانشمند رو گرفت و با احترام اون رو به تجارتخانه برد و بالای دست خودش نشوند و گفت در تمام عمر کسی رو به فروتنی تو ندیدم چرا به من نگفتی که پادشاه برادر توه؟ و قبل از اینکه مرد دانشمند حرفی بزنه در صندوقش رو باز کرد و هزار سکه نقره رو شمرد و جلوش گذاشت و گفت دیروز که تو اومدی و گفتی که هزار سکه نقره رو به من سپردی حافظم درست کار نمیکرد. قضیه رو به یاد آوردم بعد از رفتن تو همه چیز به یادم اومد و میخواستم کسی رو دنبالت بفرستم که فرصت به دست نیامد چه خوب شد که امروز دیدمت ای دوست عزیز من به این طرف اومدی که من بخوام قرضم رو ادا کنم راستی امروز است که به حضور پادشاه رفتی سلام خالصانه من رو بهشون برسون مرد عالم عصر آن روز به قصر پادشاه رفت و داستان رو حکایت کرد پادشاه دانا هم خوشحال و هم متأثر و ناراحت شد و گفت افسوس که در این شهر انقدر علم و دانش رو و به دانشمندان احترام نمیذارن. این بازرگان که در تمام شهر به صداقت و امانت شهرت داره از روی ترس و به این گمان که تو برادر یا یکی از نزدیکان من هستی هزار سکت رو به پس داد و قطعا توقع پاداش از من داره اما من که اون رو شناختم و به نزدیکان و دوستانم خواهم گفت که اون رو رسوا می کنم و نقاب از صورتش برمیدارم تا دیگه کسی بهش اعتماد نکنه و میدونم که ناچار خواهد شد از این شهر بره و بساط حق بازیش رو جای دیگه ای پهن کنه سخن پادشاه که به اینجا رسید مرد پیشوری رو نزد پادشاه آوردند که پریشان و درمونده بود و با اشاره پادشاه داستان گرفتاریش رو چنین شهر داد پیشور زحمت کشی هستم که هفت دختر دارم که دوتای اونها دمه بختن چندین ماه پیش ناچار شدم به یک سفر طولانی برم قبل از رفتن نقدینم رو برای تهیه جهیزی دخترام کنار گذاشته بودم و در یک کیسه چرمی ریختم و در اون رو دوختم و محرومون کردم و به قاضی بزرگ سپردم و قاضی بزرگ جلوی چشم من اون رو در صندوق امانات خود گذاشت و در صندوق رو قفل کرد خیال میکردم کسی از قاضی بزرگ شریفتر در و درستگارتر پیدا نمیشه و اگر در این مملکت تمام مردم دستشون به دزدی آلوده بشه قاضی بزرگ تنها کسیه که پاک و پاکیزه میمونه بعد از بازگشت از این سفر طولانی نزد قاضی رفتم قاضی بزرگ به من خوش آمد گفت و در صندوق رو باز کرد و کیسه چرمی رو در آورد و به من داد به مهروم اون نگاه کردم دست نخورده بود کیسه رو برداشتم و به خونه بردم و در اونجا در ایک کیسه رو باز کردم و دیدم که به جای سکه‌های طلا نقره پر است از چند تکه سرب با وحشت نزد قاضی بزرگ برگشتم و قضیه رو بهش گفتم قاضی بزرگ فریاد زنان گفت تمام مردم مملکت به درستی و صداقت من اعتقاد دارن چطور جرأت میکنی به من تهمت بزنی من کیسه تو رو لاک و شده تحویل گرفتم و توی صندوق گذاشتم و کیسه رو همانطور لاک و محشده و صحیح و سالم به دست تو دادم و میبینی که کوچکترین درز یا شکافی در این کیسه چرمی نیست پس از کجا میتونی های تو رو بیرون بیارم و جای اون آهن و سر بریزم؟ با این حساب معلوم میشه که تو از اول من رو دست انداخته بودی و در اون کیسه چرمی سر ریخه بودی و به من داده بودی. یه احتمال دیگه هم هست که در خونه سکه ها رو از کیسه درآوردی و این آهن قرازه رو به جای اون ریختی و اومدی از من چیزی بگیری. آهای این باز متقلب رو که به شخصی مثل من تهمت میزنه رو از اینجا بیرون بندازید. هنوز این حرف از دهن قاضی بیرون نیمده بود چند نفر از خدمتکاران چوب به دست نزد قاضی رفتن و کتک مفصلی به من زدن و از خونه قاضی بیرونم انداختن مرد پیشور کیسه چرمی رو به پادشاه نشون داد پادشاه هرچه اون رو زیر و رو کرد نتونست درز یا شکافی در اون پیدا کنه یه بار دیگه از مرد پیشور خواست که همه جزیات داستانش رو برای اون شهر بده پادشاه که از ظاهر قضایی دریافته بود که اون مرد راست میگه و از طرف دیگه نمیتونست قبول کنه که قاضی بزرگ دروغ گفته باشه به فکر فرو رفت و بعد از چند دقیقه به مرد پیشور گفت کیسه چرمی رو نزدش بذاره و بره و این داستان رو برای هیچ کس بازگو نکنه و منتظر بمونه پادشاه دانا وقتی تنها شد مدتی رو به فکر گذروند و اون روز و اون شب رو به کارهای مملکت پرداخت و نزدیک نیمه شب به خوابگاه رفت و ساعتی بعد که های قصر خاموش شد و همه به خواب رفتند از خوابگاه بیرون اومد و پاورچین پاورچین به تالار بزرگ قص رفت و قالیچه ابریشانی بسیار زریف و قشنگی رو که پای تخت زرین او گسترده بود با کارد تیزی که همراه آورده بود پاره کرد پارگی قالیچه طوری بود که هر کس در نظر اول متوجه اون میشد. پادشاه بعد از پاره کردن قالیچه به خوابگاه برگشت و آسوده به خواب رفت. دقایقی بعد رئیس نگهبانان قص که هر شب چند بار فانوس به دست به تمام تالارها و اتاقهای قص سرکشی میکرد وارد تالار بزرگ شد و در چند قدمی تخت زرین چشمش به پارگی قالیشه افتاد و از ترس در جای خودش میخوب شده بود میدونست که پادشاه چقدر به این قالیشه زیبا و گرانبها ها توجه داره و قطعاً اون رو که سرپرست نگهبانان قصره در این کار مسئول میدونه. به همین دلیل بدون اینکه فرصت رو از دست بده قالیچه رو جمع کرد و برد و اون رو در پارچه پیچید و به راه افتاد و از قص بیرون رفت. از کوچه های پرپیچ و خم گذشت در کوچه تنگ و تاریکی در خونه رو کوبید. رئیس نگهبانان قصر محمود ماهرترین رفوگر شهر رو خوب میشناخت و میدونست که در کار خودش زبردسته و مانند نداره محمود رفوگر از خواب بیدار شد و در رو به روی رئیس نگهبانان قصر باز کرد و او رو به کارگاه خودش برد رئیس نگهبانان یک موسکه طلا را از جیب خودش درآورد آورد و بهش داد و گفت محمود مرگ و زندگی من به دست توئه. باید تا قبل از طلوع آفتاب این قالیچه رو طوری رفو کنی که هیچ کس نفهمه. در عوض این سکه‌های طلا مال توه، حاضرم چند برابر اون رو هم به تو بدم به شرط اینکه تا صبح کار تو تموم کنی. محمود رفوگر چیزی نگفت و در روشنای فانوس نگاهی به قالیچه انداخت و از همان لحظه کارش رو شروع کرد آن شب محمود رفوگر تا صبح مشغول به کار بود و رئیس نگهبانان بدون اینکه ای حرف بزنه در گوشه کارگاه ناظر بود و میدید که های هنرمند محمود با چه مهارت و زرافتی نقشهای قالیچه رو به هم بس می‌کنه و آثار پارگی رو از بین می‌بره. در دمدمای صبح که هوا کمی روشن شده بود محمود رفوگر کارش رو تموم کرده بود و به رئیس نگهبانان اشاره کرد که جلوتر بره و جای پارگی رو در قالیچه بهش نشون بده و او هرچه قالیچه را پشت و رو کرد نتونست کوچکترین عثری از پارگی پیدا کنه قالیچهٔ ابریشمی گونه عیب و نقصی نداشت رئیس نگهبانان با خیال آسوده و راحت قالیچه را به قصر پادشاه برد و اون رو در پای تخت زرین گسترند و دنبال کار خودش رفت ساعتی بعد پادشاه به تالار بزرگ رفت و قالیچه ابریشمی رو دید و لبخندی زد و رئیس نگهبانان رو صدا زد و پرسید که این قالیچه رو برای رفوع به چه کسی داده ای؟ رنگ از روی اون مرد پرید و زبونش بند اومد اما پادشاه از اون دلجویی کرد و گفت خود من این قالیچه رو پاره کردم تا بهترین رفوگر شهر رو بشناسم. رئیس نگهبانان نام محمود رفوگر رو بر زبون آورد پادشاه از اون خواست که اون مرد نزدش بیاد و ساعتی بعد محمود رفوگر که به دربار اومد پادشاه مهارتش رو در رفوگری دید و و کیسه چرمی مرد پیشور رو بهش نشون داد و گفت به دقت این کیسه رو نگاه کن خیال میکنم اون رو قبلاً دیده باشی محمود رفوگر کیسه رو گرفت و اون رو پشت روش کرد و گفت این کیسه رو یه بار رفو کردم غیر از خود من هیچ کس نمیتونه جای رفو رو ببینه پادشاه گفت حالا درست فکر و بگو چه کسی این کیسه رو برای رفو به کارگاه تو آورده مرد روفوگر احترامی کرد و گفت خب یاد دارم که یکی از خدمتکاران قاضی این کیسه چرمی رو پیش من آورد و مزد خوبی هم به من داد. قضیه روشن شده بود و نقطه تاریکی وجود نداشت. پادشاه قاضی بزرگ رو از کار برکنار کرد و اون رو به کیفر اعمال خودش رسوند. و دستور داد که سکه های طلا و نقره مرد پیشور رو بهش پس بدن. اما هنوز این داستان به پایان نرسیده بود که جوانی روستایی از پادشاه اومد و گفت قربان خاکبهای جواهر آسایت شوم. من از راه دوری آمدم. از یک نفر که باغ و ملک بسیار دارد و گاهی به آبادی ما سالار آباد نیاید. شکایت دارم. پادشاه پرسید چه شکایتی داری؟ روستایی جوان گفت من از صبح تا شب در مزرعه کار میکنم و عرق میریسم و بعد از چندین سال تونستم چند سکه که شاید ناقابل باشه ولی برای آدمی مثل من خیلی زیاد بود انداز کنم چند هفته پیش آقای جهاندارخان که باغ و ملک بسیار داره به ده ما میاد بهش گفتم مختصر ای دارم و میترسم دوست اون رو ببره. جهاندارخان گفت اون رو به من بسپار و خیالت راحت باشه. هر وقت احتیاج پیدا کردی بیا اون رو از من بگیر. من احمق خیال میکردم جهاندارخان با اون همه ثروت و باغ و ملک به این چند سکه نیازی نداره. اندوختم رو بهش سپردم. دو سه روز پیش یکی از همسایه ها اومد و گفت که اگه مختفر پولی داشته باشی زمین کوچیکی رو میتونم برات بخرم که بتونی آبادش کنی و دیگه روی زمین خودت ارباب بشی و کار کنی. من هم خوشحال شدم و سوار خر شدم و به باغ جهاندارخان که نزدیک پایتخت است رفتم و. ازش خواهش کردم اون چند سکه ناقابل رو به من پس بده. هنوز حرفم تموم نشده بود که جهاندارخان با شلاق توی سر من کوبید و فریاد کشید و گفت تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ که من در تمام عمر ریخت و قیافه تو رو ندیدم اما وقتی دید که دست بردار نیستم به نوتراش گفت که تا میخوره کتکش بزنید و از باغ بیرونش بندازید خدا رو شک میکنم که خرم رو نگرفتن به دستور پادشاه جهاندارخان رو نستش آوردن جهاندارخان وقتی داستان رو از زبان پادشاه شنید احترام کرد خاک پای پادشاه رو بوسید و گفت به همه مقدسات قسم میخورم که این مرد دهاتی رو نمیشناسم. وزن تا به حال سالار آباد نرفتم و حتی اسم چنین جهنم در رایی رو نشنیدم پادشاه از جوان روستایی پرسید شاهدی برای ادعای خودت داری؟ وقتی پولهات رو به جهاندارخان دادی کسی اونجا بود به چشم دید که سکه ها رو به دست این مرد دادی؟ جوان روستایی گفت هیچ کس نبود من این آقای جهاندارخان از چشمهای خودم بیشتر قبول داشتم حال نمی کردم همچین آدم حق بازی عذاب در بیاد جهاندارخان قیافه مصومانهی به خودش گرفت و تعظیمی کرد و گفت پادشاه ها میبینید که این مرد چقدر بددهن و چه چیزی داره به من میگه؟ پادشاه به حرفش توجهی نکرد و از جوان روستایی پرسید در کجا اندوختت رو به دست این مرد سپردی؟ جوان روستایی گفت زیر یک درخت گردو نزدیک سالاراباد پادشاه گفت: میتونی درخت رو به اینجا بیاری تا شهادت بده؟ جوان روستایی خندید و گفت: درخت پا نداره به اینجا بیاد. پادشاه گفت: حالا که درخت پا نداره، پس تو باید به اونجا بری و قضیه رو ازش بپرسی. بیا و انگشتر من رو بگیر و با خرد ببر تا سالار آباد و اون درخت گردو بهش نشون بده و بهش بگو که پادشاه انگشترش رو با من فرستاده و برای تو پیقام داده که شهادت بدی جوان ساده دل روستایی انگشتر پادشاه رو گرفت و به راه افتاد تا به سالر آباد بره پادشاه دستور داد که نوازندگان بیان و مجلس بسمی رو رابندازند و به جهاندارخان گفت که در کنارش بشینه. جهاندارخان خیالش آسوده بود که درخت شهادت نمیده و پادشاه برای تفریح و سرگرمی جوان روستایی رو به سالار آباد فرستاده. پس با دل شاد و خاطره آسوده در کنار پادشاه نشست و به نوای موسیقی گوش میداد و رقص ماهپیکر رو تماشا می کرد. نیم ساعتی گذشت، پادشاه سر در گوش جهاندارخان گذاشت و گفت: گمان می‌کنم مرد روستایی به سالار آباد رسیده باشه. جهاندارخان گفت: اونجا خیلی دوره هنوز نرسیده و باز چند دقیقه بعد پادشاه گفت یقین دارم که اون حالا پای درخت گردوی سالاراباد ایستاده و انگشتر رو بهش نشون میده جهاندارخان خندید و گفت نه قربان هنوز نرسیده و اما جوان ساده دل رستایی ساعتی رو پیمود تا به سالار آباد رسید و پای درخت گردو رفت و انگشتر پادشاه رو به درخت نشان داد و ازش خواست که به نفع او شهادت بده و چندبار خواهش خودش رو تکرار کرد و جوابی نشنید و خسته و ناامید سوار بر خر شد و ساعتی رو پیمود تا به قصر پادشاه برسه مدتی بود مجلس بصن به پایان رسیده بود و جهاندارخان در گوشهای از تالار بزرگ در کنار درباریان منتظر ایستاده بود وقتی جوان روستایی وارد تالار شد تعظیم کرد و گفت قربانت گردم انگشتر رو به درخت نشون دادم چندین بار به درخت گفتم که به فرمان پادشاه عادل حقیقت رو بگو اما هرچه گفتم و التماس کردم فالده نداشت درخت گردو یک کلمه حرف نزد درواریان خندیدن و جهاندارخان هم به خنده افتاد پادشاه نگاه تندی به حاضران کرد همه ساکت شدن مرد روستایی میخواست باز هم در درخت داستان بگه و از بخت بد خودش گلایه کنه اما پادشاه گفت جوان نگران نباش درخت شهادت خودش رو داد درخت به نفع تو شهادت داد وقتی تو در راه بودی من چند بار از این مرد که به قول تو باغ و ملک بسیار داره پرسیدم که جوان روستایی به درخت گردوی سالارابات رسیده و اون که متوجه مطلب نبود میگفت که هنوز زوده و تا اونجا راه زیادیه در صورتی که می میگفت که حتی نمیدونه سالارابات در کجاست و اسم چنین جایی رم نشنیده رنگ از روی جهاندارخان پرید و همه چیز رو اقرار کرد. پادشاه به وزیر اعظم خود فرمان داد که اندوخته مرد روستایی رو از جهاندارخان بگیر و به جوان روستایی بده و این مرد حقباز و متقلب رو مدت زندانی کنه وزیر اعظم با جهاندارخان و جوان روستایی از تالار بزرگ بیرون رفتند و پادشاه که بسیار خسته بود به خوابگاه رفت و اون شب تا صبح آسوده خوابید از داستان درخت گردوی سالاراباد به این نتیجه می رسیم که در امانت خیانتی صورت نگیره امانتی که به ما میسپارند، به ما اعتماد کردند و ما اون اعتماد رو باید پاسخ بدیم و بیایم با اعتمادی که به ما داشتن اطمینانشون رو جلب کنیم و در امانت به صورت صحیح بخوایم اون رو ازش مراقبت داشته باشیم و امانتمون رو به صورت درست و اصولی انجام بدیم و خیانتی در کار پیش نیاد خیلی ممنونم از همراهان عزیز که تا به این لحظه من رو شنیدید. درود بر شما یار و نگهدار شما باشه